چه جاده زیبایی، چه جنگل سرسبز و انبوهی پارک تقریبا پس از روستای تنگراه آغاز می شود. اینجا قدیمی ترین پارک ملی ایران است به نظر می رسد اینجا یک جنگل طبیعی و قدیمی است پس حتما حیوانات مختلفی در آن زندگی می کنند. بله، در این پارک انواع حیوانات و گونه های گیاهی وجود دارد پس باید این پارک خیلی بزرگ باشد بله همینطور است این پارک 900 کیلومتر مربع مساحت دارد حتما این جنگل بزرگ بسیار زیبا و دیدنی است اما جاده ای که از وسط جنگل میگذرد بر محیط زیست منطقه تأثیر منفی میگذارد درست است آیا رودخانه و ابشار هم در این پارک وجود دارد بله آبشار آقسو و آبشار جنگل گلستان با ارتفاع 70 متر از آبشارهای معروف این پارک هستند. رودخانههایی نیز در این پارک جاری است. اگر امشب در پارک بمانیم خطر حیوانات وحشی مرا تهدید نمی کند؟ نه می توانیم در آن محلی که چراغها روشن است استراحت کنیم. خوب است. من دوست دارم از آن گلابی های جنگلی بچینم،